راز ها و نیازها شنوندگان عزیز ارجمند درود بر شما به برنامه راستانی آسها گوش میکنی تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم تلفن یا های ما 323 512 72 62, 64 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها ساعت دوازده تا دو بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامههای گذشته رو بشنوید میتونید به هلاکوی آرکایو سری بذارید با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت ایران بفرمایید الو پردران بفرمایید؟ میاد بفرمایید. من صفاض خدا از وقتی که میخواستم اینو مطرح کنم که من اه, اه، هستم ساله و 7 سال دور اروپا اومدم و 23 سال بود 23 سال بود که از اروپا اومدم بیرو. و تا وقتی توی ایران بودم خانوادهم اجازه نمیدادن که احساسی یا داشتم نزدیکی با این مخانف مخالف داشته باشم ولی خب دانشگاه دانشگاهی بودم، تحصیلاتم زیادی داشتم و رابطه خوب اجتماعی با دختران داشتم. با اینکه بالاخره از ایران اومدم، ایران به اروپا اومدم و پنج سال من اقامت نداشتم و در این پنج سال که سعی می‌کردم با کسی آشنا بشم به دلیل نداشتن اقامت همیشه به طور شد از طرف خانوادگی اقامت نداری نمیشه و که دو سال اقامت گرفتم شرایط تحصیلی و مالی خیلی بالایی میذارم و الان سی سال به من تا یک دوست نداشتم و از لحاظ مالی و اجتماعی هم شرایط هست که بتونم تشکیل خانواده بدم و با یاری گریفتن از سیدی شما و دوستادن به برنامه شما فکر میکنم اون آمادگی دارم که بتونم خانواده رو تشکیل بدم اما نمیتونم اطمینان کنم به امیدوارم به کسی بر نخورد به خانم های هموطنانه چون اصلا نمیدونم چی کار باید بکنم یک ناخصب کنید درصب کنید نه. آخه شما عزیز شما میگید در ایران خانواده تون مخالف رابطه احساسی و عاطفی شما یا به هر حال بیش از اون بودن مگر تمام بچهای که در ایران هستن در همه زمین ها طبق فرمان و نظر پدر و مادر عمل میکنند و زندگی میکنند که شما این گونه بودی خب شما هم دوباره بهانه می‌گشتید نداشته باشید. ولی اگر فرض کنید سب کنید، فرض کنید اگر شما با دختری حرف می‌زدید یا بیرون با هم میرفتید یا به دختری علاقمند میشدید قرار بود پدر و مادر شما یه دستگه‌ای داشتن تو چشم شما یا تو صورت شما می‌خوندن و میفهمیدن تو از این پنهان کنید دلیلی که من از هم بود که فرار کردم. من حرفم می این است که حالا من بحثم اون نیست همه از... نداشتم با دختر برم بیرون به موبایل نداشتم تلفن ها رو کنترل میکردن آادگی عمل نداشتمم ده... اگر موبایل نداشتید چجوری تلفناتونو تلفناتتون رو کنترل میکرد. وقتی به تلفن رو... خونه یه دونه تلفن داشتیم همه از اون تلفن صحبت میکردن و وقتی کسی زی زد گفتن زرید زده؟ می گفتم چرا ضعی زده ف علی میخوایم با این دختر رابطه داشته باشی؟ از خونه برو بیرون ما اجازه نمیدیم تو با دختری که از دانشگاهت ازواش کنیم خبه خانواده من بود گذشته در گذشته دسته من کناش آبا کردم یه با کسی آشنا بشم که بسیدن دوستی خود ایجاد کنم ولی نشد چون میخواستن دختری از یه خانواده ایتخاب کنن که خانواده مورد تحیید اونا باشه یعنی 10 دقیقه سبت کنیم و ازدواج کنیم من چون وقتی. دیدی باری نرفتم و از خب شما اینجا چرا پنج سالی که در اینجا بودید و اجازه اقامت نداشتید وقتی به دختری میرسید درباره اجازه اقامت تون حرف می زیدید؟ برای من شما خواستید چه برنامه داشت باشید که احتیاج به اجازه اقامت داشت؟ یه پسر و دختری از هم خوششون آمد به اجازه اقامت چه ارتباطی داره؟ آی تو شما بودیم. اول دختری که به پسر ایرانو میرسه من سعی کردم تلاش کردم و طریق فیس تلاش کردم خیلی چیز داشنای ایرانی بودم اول سوالی که دختر از پسرانی پرسید که چند سال اینجایی اقامت دارید یا نداری یعنی این دو تا سوال دو تا اولین سوالایی که وقتی دختر از پسر خوشش میاد میپرسه یعنی وقتی میگی که مثلا من اقامت ندارم یا مثلا وقتی کنی بگی من اقامت دارم مثلا میان که آخه هیپ ایش شدی پس اقامت داشتی حالا اقامتت بگی موفق باشی از اینجا حرفا آخه اعظم یعنی میخواد میگه تمام کسانی که وارد سعود میشن اگر اقامت ندارن کسی هم باشون دوسته میشه من نتوانستم این را بسازیم چطور؟ نه ببینید شما برای خودتون یه دنیا ایران هم دارید از حرفی چون به این در یه کردم هر فیچون است که من نمیتونم اتვینان کنم یعنی من من به هیچی من مگر سوار هواپیما میشم اتვینان میکنم یا سوار ماشیدم میشم اتვینان میکنم که تصادف نکنم آخر درجهاتی از اتვینان وجود داره شما ما اصلا چرا کی خواسته از شما که اتვینان کنید؟ اونا از تازه بیشتر به شما اتვینان کند. چرا شما قراره به اون از کنید؟ از دو تا خانم که خوشم میومد در زمانهای مختلف اون موقعی که اقامت نداشتم گفتن اقامت نداری وقتی که اقامت گرفتم گفتن که خب حالا من مهندس هستم تو هیچ کاری نیست اینجا تو به حساب نه پولی دری نه زندگی جاری آخه عزیز آخه اینا رو که خب الان یه همچی کسی که دنبال بازی و بحانه میگرده برای چی تو درگیرش میشی؟ یعنی چه خبش. دلیل داره کسی که باز بازیوار آخه عزیز تو در این حرف می‌زنی که ظرف مثلا 13 14 سال گذشته یک دختر پیدا نشده که او تو رو بخواد یا تو او رو بخوای؟ و دو دمباله... من بخوام ولی کسی پیدا نشده منو بخواد. خب خب پس ما مشکل اون نمینه پس دختری پیدا نشده تو رو بخواد؟ بله. خب آخه دخترها چرا اینقدر من من نمیگه. من آن وا نیستم خیلی از از خودم تعریفی ندارم. اه ولی مشکل اینجا یا بلد نیستم من رابطه رو ایجاد کنم یا اینکه من خیلی به تشکیل خانواده هستم دختران می ترسن ولی خب حالا هر میخوام به اینجا برسنم که من با یه خانمی آشنا شدم چون دیگه از ایرانه قسمید کردم واسه تو بخواهیم چون نه پول دارم نه حیصل دارم ملاذ هیکل چی نداری؟ هیکل مثل آرنولد. آها آرنولد حالا مگه به من بگو از <تصفيق> از هزار نفر آدمی که هیکل دارم چند شد مثل آرنولد هستی؟ بعد آیدخته اینا چه نیدا واسه بخوام بخاطر از خودم دل نه‌ایورم بخاطرون دارم میگم به تو والله از حوا پیدا نمی‌کنن. ولی من الان با یه خانم آشنا شدم. این خانم خانون آمریکایی و از من سه سال سیستره و من این خانمو که تانزانیا دیدم یعنی من از روی دفته بودم تانزانیا و ایشون هم از آمیکا اومده بودم تانزانیا باید یه سفر زیارتی که داشتیم در حال ما اونجا همدیگر رو دیدیم و وقتی برگشتیم به کشورمون از طریق فیستوخ و اسکایپ با هم در اعتباط بودیم و این ارتباط هشت ماه تو تشگلان و حدود چهل ساعت حرف اسکایپ ارین و, و, و این خانم ده ماه قرار بیاد اینجا که ما همدیار رو ببینیم و صحبت بیشتر بکنیم و من بشیم بلند بشیم ببینیم در چه جوریه ولی وقتی خانم گفتی خود بیاد اینجا من اون علاقه ای که بهبت این خانم داشتم اصلا خیلی کممرنگ شد چرا نمیدونم بخوایم این فکر که می من میخوام می چی کار کنم اگه ازدواج کنیم آخه کی ازدواج, ازدواج کنه تو هنوز این خانمو ندیدی چجوری میخوایی باش ازدواج کنی عزیز آیا دکتر تن خانمیش از من نپرسی اقامت داری یا نداری خیلی هم زیبا و یعنی هم همه چیزایی که من یعنی مثلا ذهنم هستو داره فقط مشکلی که یعنی خب خب بی الان بیاد اینجا خب هر روز اینجا چیکار کنی من نمیدرم آی دکتر یه دختری خب من را... می که یه دختر از چی می ترسی که مثلا به تجاوز کنه عزیز نه آی دکتر من میترسی خب اگه خانم بیاد اینجا خب ما از همدیگه خوشمون بیاد که من میترسم از هم خوشمون بیاد حالا قرار به ترسیم ازماج بگیریم کجا میخواییم زنگی کنیم از من اصلا این حرفها زده نشده تو چرا الان یه بحثی نمیکنی که بچهمون رو کدوم مدرسه بفرستیم برای چی میذاره پیش میوی اینقدر چه ضرورتی داره تو می با با کسی آشنا بشی حالا بعد از سی سال یه نفر پیدا شده میخواد تو رو ببینه شاید از هم خوشتون بیاد بگذارید اون اتفاق بیفته برای چی دنبال این هستی که بعدش چیکار کنی یا در وقت ازدواج چیکار کنی عزیز بعد از این که ما خیلی دوست دارم. باید. یادگیری ازدواج کنم حالا اصلا مسئله ازدواج با رئیس توی خانمی بعد از این همه مدت پیدا شده دلش می‌خواد تو رو ببینه در میاد اونجا تو رو ببینه خب بگذار این کارو بکنه دیگه برای چی خودتونه گرم می‌کنید مشکل اینجاست که همسرش یه خانمی خواهد بیاد اینجا از من توی سایقه کمال دارم دنبال خیلی خب بگرفت من اون خانومم که خبر از این چیزا نداره برای اصلا شما نه بذاره نه به باره تو برای چی حالا خودتو تو گرفتار موضوعی کردی که مسکی گویی به هم تعهدی دارید با در ارتباط خاصی با هم قرار بگیرید همین است که هست بنابراین من پیشنهادم به تو اینه که خودت اذیت نکن اگر این خانم آمد با هم باشید ببینید چه میشه و ضمن فکر و بحث ازدواج رو نکن بلکه اناسان موضوع ازدواج مطرح نیست تو اگر میگی با من و سیدی های من آشنایی، یقعاً چش ماه نو ماهی دیگه به من زنگ بزن ببینیم به درد هم میخورید یا نه اوکی okay. رو uh, خود من... باش جان. یه پوستش کوچه هم در من من میخوام بدونم در این که من کشش پیدا میکنم به ملیت های دیگه چیه؟ هیچه اشکاری نداره تو شما به سمت دختر علاق من بشه و ملیتش رو بدش کن چیکار با ملیتش دارید؟ تو, تو همچنان بازی همونها رو داری در میاری که ملیتش چه و چه نیست حال موازه بخواهد باش خوش آشونم باید صحبت کردم خوش باید. مرسی عزیز خواهش میکرد شنگون عجبند بعد از دقائقی با ما باشی. شنونده گرامی به برنامه رسا و ها گوش می‌کنید با شنونده‌ی عزیز بعدی گویی خواهیم داشت. راد ایران بفرمایید. الو. بفرمایم سلام، خسته من 24 ساله و بلمه ده حدود ساله که از ایران به اتفاق مادرم و بعد از خارج شدیم. پدرم هم دو سال زودتر از ما از ایران اومده بود بیروت. بعد از, از زمانی که وارد یکی کشور آلمان شدیم، دست به 14 سالگی من خیلی ناراضی بودم از این تصمیمی که گرفته شده بود و یه حالت لجبازی با خودم محیط رو اینا داشتم یک سال و نیم بعدش که پدر بزرگم صورت کرد و پدر بزرگم یه جورایی مثل پدرم برای من بود باش بزرگ شده بودم باید از اونجا من افتردگی های شایدی گرفتم جوری بود که توی دوره تینیجری پوندشنو در سالگی من خودفندی می کردم از خونه به دو مدت نه ما خارج شده بودم. بعد دوباره بعد نغمه بعدشم خونه و این افتاده یا رو من تا الان همیشه داشتم هی hey, قد شده هی hey, اومده الان همونجه یک ساله که دیگه واقعا اوجشه و من اوزه دو سالم گرس میخوردم چون من گفتن که شما اختلال شخصیتی بوردرلائن داری من خ... نه نه سبب اختلال... سبب اختلال شخصیتی بوردرلائن؟ بله مطمئن بوردرلائن بود یا بایپولار بود؟ نه گفتن بوردرلائن آخه اختلال شخصیتی بوردرلائن یا شخصیت ناپایدار یا مرزی یا مرزی جز در شرحات هاست که به خاطر اون دارو به کسی نمیدن من همین من اون موقع واقعا هیچ اطلاع نشم چون من تا اون زمان رواشناس رفته بودم ولی نه ترافی کرده بودم نه وابان پیزشک رفته بودم که پرسی بارم تا اینا به من گفتن که شما هم افسردگی دارین هم لاین د به من حالا پس دوکس تخون... رو خب قرص رو به خاطر چیز دادن؟ متاسفم که تلفنت قطع شد عزیز. قرص رو به خاطر بیماری افسردگی دادن و علاو... در این عالم تشخیص bordeline رو دادن. به برحال... یه علایمش از همون حرفایی که زدی که به خاطر فوت پدر بزرگ بعدا دچار افسردگی شدی و از خونه اومدی بیرون و داستانای دیگه اینم زمینه رو برای اون ماجرا فراهم میکنه ولی به هر حال متشکم تلفن ات قطع شده گر آمدی صحبت رو صحبتون میتونم می‌داهم لیبایش نبنده یه گرامی بعدی گفته گوی خیم با شدی ایران بفرمی درخواستم بفرمی سلام سلام آقا من یه میخوام بجی یه موزیک با اون کنم من تو اسلو زندگی میکنم بیست و هفت ساله کجا زندگی میکنی عزیز این اوکی در بیست و هفت سلح. بیست و هفت سال, سال... یا 27 سال هفت ساله اونجا سال اینجا زندگی میکنم چهل سه ساله اوکی بعد شغل هم نرشته معلو می سی ساله هم کار میکنم از نظر از نظر ازدواج چه کردی یازیست کالای ازدواج نیستم کالای ازدواج نیستی باری دختر به خلا خوب از خانواده اینا اونجا هستن یا نیستن؟ من خواهرم اینجاست و با شوهرش و بچه هاش من رابطه داشتم الان رابطه دارم ولی رابطه‌ای جدی نیست که مثلا بخام روش ازدواج حساب کنم اوکی okay. خب. زیاد اهل ازدواج نیستم okay, اوکی بله موزه اینه که الان من یه ده‌سال که تو فکرم بود که مثلا نروش برام یه جور جنبش. اها. بودم از اول 10 سال پیش. دره نشده هه مثلا درسم هم تمام نشده بوده تو سچش بودام نشده. ولی الان آيا صبر کن نه کن آیا هیچ وقت رفتیم مثلا یکی دو ماهی اونجا باشی ببینی با اون شهر یه دو ماه نبودم ولی 10 سال یونان مثلا از می رفتم می رفتم مثلا دو هفته سه هفته می موندم می مارم. مثلا تو یه سال ستو می <تصفيق> ولی بعدا که درست من اون موقع تمام نشده بوده شنید بلکه درستم تمام شده شده بعد یونان بگذاره خوب رفتم سر کار رو اینجا بعد بگذاره مشکول کار شدم بعد یونان کراش شد و بعد در صورت نمی رم. بعد با یه پسعی من هم خونه شدم دو سال اون هم حالی یونان بودش اومدش اینجا زندگی نشد یعنی اگر نرفتی اگر نرفتی یونان یونان وردی به خونه یونان آوردم به خونه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بعد بعد ایسی. با به اونم نشد بگم خورد بعد دیگه من دوباره همین دو هم دویه سر کارم بودم مجبه نگیم داشتم اینا تا اینکه من رفتم هم یه سفای استانیا بعد اونجا رفتم همین یانوار جانواری اونجا بودم بعد خیلی خوش آمد از اونجا بعد یه شهر کوچی هم هستش که آب و خیلی عالی از یه ما اونجا جمعالی بودم بود مثلا 16 درجه بالا استفر بعد اونجا چند تا دوستان پیدا کردم که مثلا مثلا نوروژی هم بودم یا <تصفيق> مثلا اونجا سوال زندگی می‌کردن که شهرم می اینجا خیلی خرج ارزونی لازم اوال قضایی یا اینا با تو اینجا می کنی مثلا کار پیدا اونجا یه سری که از اینجا این فیزان تیمر رو میبرم اونجا تابستون‌ها، زمستون‌ها 6 6 هفته، 7 هفته. بعد مثلا اونجا هوا خوری و اینا. بعد یه سری پرستاری اونجا مثلا یه هفته دیگه کار برم. و از بعد رفتم با اونجا صحبت کردم این رو من گفتش که مثلا بیای تابستون اینجا با اختیار داریم یه مثلا اینجا وایسی کار کنی. بعد حالا من این شد اینجوری شده من رسیدم که من خیلی کردم. کارم اینجا استفاده بعد من یه چیزیام دارم یه آپارتمان دارم اینجا خودم مال خودم فکر کردم اینجا نم بدم مثلا یه دو ماه دیگه برم مثلا یا یه سال برم اونجا زندگی کنم یعنی... نه من فرضم حرفم با تو اینه که اولا تو با زبان اسپانیولی که آشنا نیستی هستی نه من انگلیسی میدونم و با نروژی خب آخه ببین عزیز وقتی تو میخوای بری در بیمارستان کار بکنی جز در یه شرایط استثنایی اگر زبون رو ندونی هم احتمالا در استخامت مساله است و هم اونجا مسائل و مشکلاتی پیدا میکنی. بیمارستان نروژیه؟ آخه بیمارستان مار... بی نروژی که نمیتونه بگه در یک کشوری مانند اسپانیا اگر یه مریض اسپانیایی اونجا از اسپانیای بلده اسپانیولی بلده تو؟ نه اینجا میدن که مثل چیزی چیز نفرستیش میگن یا انتیتو میگن؟ آها آه یعنی تو یه جایی که فقط خانه سالمندان است که سالمندانه که یعنی همه کارمندا و رئیسش کشور همه اصلا کلا نورویجیان هستن حالا سوال اول زبان سوال که چقدر علاقمندی زبان دیگر یاد بگیری خیلی خب پس برنامه‌ریزی مشکلی ولی ببین عزیز به نظر من اصلا از اینجا استفا نده و برو یعنی تو اول بگرد کار رو پیدا کن مطمئن باش که اونجا کار داری برای به دو دلیل یکی اینکه داشتن کار تزمین میکنی که اینجا استفا دی همه چیز به هم نریزی دومی که از اول که میده اونجا درگیر میشی و مشغول میشی و اون خودش به تو یه فرصتی میده که بتونی از نظر زبانم کاری رو که با انجام بدی انجام بدی و اینو من نگرانیم است که خودی یه رخفه ای در زندگی و کارات پیدا بشه بدون اینکه ضرورتی داشته باشه. اینی که من فکر می‌کنم. اینجا رفتم از صحبت کردم میگه که نمی‌شوین مثلا چیز بگیرید. هرین شورا بدون حقوق. نامتوجه هستم. هستم. نه نه من, من که کلگو... نمیگم. میگه باید استعفا بدید. نه ببین عزیز، صبر کن. شما اولا تو دنیای زندگی می‌کنید که خیلی از وقت هم ترجیح میدن این مراکز تو باشون تماس میگیری. حالا تلفنی یا راههای دیگه بعد از اینکه چنین کاری رو کردی وقتی که حاضر شدن مثلا تو رو ببینند یا دو روز بری که مانع نمیتونه میشن یا شنبه و یه ازش استفاده میکنی بنابراین در عمل تو میتونی هم کاراتو انجام بدی هم بری زبنا اگر اینقدر مصمم هستی شاید بعد نباشه که یه مقدماتی تو زبان اسپانیایی هم. یاد بگیری یعنی کلاسای بری یا به هر حال در این زمینه یه وسایل دیگر آموزشی هست که می‌تونی با زبان آشنا بشی و اون کارم انجام بدی که خاطرخواه باشه. آخه یه همچین چیزی من فکر کردم گفتم مثلا با شما مشورت کنم. من که می‌خوام اجاره بدم گفتم مثلا نصفش که میدم به بانک، یه وام بانک می‌دم نصفش رو واسه اجاره اونجا رو بدم بعد این اقلام من چیز درام. این اقلام بالاخره پول که چیکار ممکنه مثلا, با... مثلا میتونم نمی‌تونم یه دو ماه بدينه. کارم من اصلا امجره. آخه دلیلی بر این کار نمی‌بینم عزیز چرا تو میخوای بعداً اصلا من نمی‌خوام که کنم خیلی ساده اولا الان در سرما تموم نه با الان ده زیر خلال خلال دو, ماه... دو ماه نه پیداست که اونجا هوا سردیشه سبب شده که زره حرفای خاصی بزنه که اصلا دیگه اصلا کس کردم بخود تو بیست و سر... خب هفت سال اونجا بودی حالا دیگه سر یکی دو ما بازی در نیار نه من ببین عزیز، اصولا یه مقدار بدون برنامه بودن مقصدن در یه همچی جا به جایی که دوتا فرهنگ و جامعه و زبان رو دری تغییر میدی و ممکنه این تصورات و تخیلاتت حالا ممکنه در یه زمینه درست باشه که میخوای در نروژ نباشی ولی ای بس و ببینیم که مثلا اسپانیا به دلالی جایی تو نیست و اون وقت باش مسئله پیدا کنیم بعدم من اصلا کار خاصی نگفتم بکن من که نمیگم که تو از برنامه و هدفی که داری خودتو جدا کن مم. محرفم این است که با مراکزی که فکر میکنی ممکنه تو رو به عنوان پرستار بخوان باشون تماس بگیر. با که بب... میکامت گفته از جون میخوایم تا مثلا آگست تو بعدشید بعدش و شما من گفتش که تو وقتی مثلا پات اینجا باز شروع بکنی کار کنی این سماحو میتونی اینجا بیایی در درزونم که یه, یه دونه چیز نداره دو تا داره تو همون شهر دو جای مختلف میتونی کار بکنی یعنی اگه اونجا نشان میتونی بریم اونجا یه جای دیگه از پشتن ببین ببین عزیز ببین. من, من البته اگر خیلی پولار رو پشت سرت خراب نمیکنه، اگر خیلی چیزها رو به هم نمیریزی. من مشکلی باش ندارم و زمنانم میخوای فاصله و در حقیقت استراحتی بکنی ولی اگر استفاده دادن یه مقداری میتونه برای اگر مجبور شدی برگردی مشکلاتی به وجود بیاره اگر اجاره دادن خونت به دنبال خودش مقدار مسئلی برات به وجود میری مقدار مطمئنتر باش بله این جایی که دو جا دارند خب فرقی نمی کنه. پس معلومه یه مؤسسه است فرض کن نتونستی با رئیسش بسازی خب بعدا چه خواهد شد تکلیف بسیار روشنه اون وقت است که میبینی هیچ جا, جا نداری نه این یکی نه اون یکی بعدم با مراکز دیگه هم صحبت کن ببین آخه در اون شهر جایی هست یا نیستن ولی اگر علاقه مندی به زبان من اونقدر مشهر نمیرم چون قالب اوقات مانع اصلی و اساسی بعد از موضوع اقامت و مالی بدون تردید مسئله زبانه زبان اگر... مشکل ندارم خب, خب اگر فکر بولین که آمادهی و علاقه داری که زبان رو یاد بگیری من دلیل نمیرم که خودت رو بیش از این گرفتار کشوریه که الان راستش خیلی میخواد. یعنی اصلا سوعهش که کار, ندارم، نیجه کار <متحدث> من همش من اینجا کار میکنم من مگه الان من استفا دادم تا آخر این برش کار کنم دیگه مثلا تمامم ولی همین الانش مثلا به دیمارس زنگ بزنم بگم مثلا ولی بهش چیز نمیگم بس کار ثابت کنم مثلا <متحدث> همون یه هفته بیا کار کنم مثلا وقت میدن اکسترا شیفت ولی بدون کار مثلا بیکار نمیمونیم. من اینو مطمئنم اینجا واسه پرستار چیزش خیلی بالا خیلی میخوام می‌دخ کو همه‌اش بورسیار همه‌شون پیرانو <تصفيق> <تصفيق> خب <تصفيق> البته من و خیلی جوان نیستیم البته من خدایان قاطی کردم حالا شما که ازیز... شما که اصلا آقای رسومیجان ما تعریفم خوشتون نمیاد <تصفيق> <تصفيق> یه روز ش... استادای شما تو خونه نباشه من صدم غروب نمیشه <تصفيق> <تصفيق> حالا نگفتم حالت خوب نیست <تصفيق> <تصفيق> نه حالت خوب نیست <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ببین عزیز الان من پیش نمی‌آم به تو اینه که علاوه مطمئن باش عزیز که جا تو تا حدودی آماده میکنی تو نمیخوام یه تصمیمه یه احساسی یا به نوعی با سرعت و عجله بگیری بعدم با مسائلی روبرو بشی یا وقت به بیراهایی بیافتی بعدم تو دو سمای کران فرصدی داری اونام که تازه از ماه جون به بعد میخونه حالا میخوای یکی دو هفته زودتر بری اگر ام. سر جاش هستن و یه قرارداد در در اصل 3 ماه رو با تو دارم میتونم بفهمم ولی در اینا هم تو آماده کن برای تغییرات برای که خیلی از اوقات این چیزایی که ما یه جایی خیلی دوست داریم وقتی بهش نزدیک میشیم میبینیم یه معایبی داری یا یه گرفتاری هایی داره که اونقدرها هم شاید ارزشی نداشته باشه بعدم براها شما 27 سال اونجا بود یه شبکه ای از دوستان و ارتباطات داری که هر اندازه شاید اونقدر رنگی و جلوه‌ای سنگین براتون نداشته باشه ولی برادر وقتی نباشه به عنوان یک کمبود برات موضوع و مسئله خواه شد اینکه پیشنهاد من به تو اینه که یزره با آهستگی حرکت کن خودت رو هم یه مقدار برای اونجا آماده کن با زبان اسپانولی هم یه کمی خودت رو آشنا کن که خاطر راسته باشه وقتی میری اونجا خاص خاصتر حداقل وارد که میشی اگر حتی یه مقدماتی بدونی در جهت رفتن توی رستوران، گرفتن یه آدرس م. یا برحال صحبت‌های دور و برت برات معنا داره برای که زبون رو شروع کردی. اینی که درسته. من فکر می‌کنم این دو سه ما ماه هم مثلا اگر روزی دو سه ساعتی توجه کنی یا یه مقدار سیدی یا فیلم‌های اونا رو ببینی که به تدریج درسته. گوشت هم باشه آشنا بشه، میتونه کمک کنه. برای جان. خبیش نگی سر. چون من اینجا یه دفعه تابستون پارسال رفتم. ده هفته، شینگهام ژانویه رفتم دو هفته. خوبیش اینه که اینجا چیز توریست زیاد داره بعد انگلیسی همه صحبت میکنن بعد نوروژی جای نوروژی زیاد داره اسکاندیناویی صحبت میکنن. چیزی نیست یعنی اوکی. مثل مثلا مادرید نیست چون من مادرید هم رفتم مادرید هیش کسی با تو انگلیسی حرف نمیزنه ولی اینجا نه اینجا همه شون اینجیستی یه سری مثلا اسپرانو داره که سقه اسکاندیناوی حتی تو بخوای من دیگه زلفونام نکرده باشی شب مثلا بری مثلا تو بار کار کنی مثلا نیگم اها نه متوجه من به هر حال من با تجربه حرفایی که می زنم مثلا من فکر کردم با شما تماس گرفتم من فکر کردم من هاشین برای گوش میکنم اونو با فکر کردم که واقعا زندگی فقط کار که نیست من همه چیز هست همه چیز هست کار هم من نمیونم بعد اینجا سیستمش عالیه از همه جوره ولی نمی دونم به یه یه ذره پیش خب من مخالفتی ندارم ولی یه ذره حساب شده باشه که نشی. موضوع باش شده باشه از نشی. خود حافظ. حافظ. حافظ. باش خوشحال باتو مرسی از مرسی با موش. شنوندگان گرامی به برنامه راستها و نیازها گوش میکنید پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم باقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستند میرسونم که فردا و پس فردا شنبه و یک شنبه نهم و دهم ده مارچ کنفرانس کودک درون رو به مدت دوازده ساعت از ساعت یک تا هفت بعد از ظهر در شرایتون سنیول شمال سنهوزه خواهم داشت در این کنفرانس چهار تست آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا دوازده سالگی و سه تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی خواهیم داشت بنابراین شنبه و یکشنبه نهم و دهم مارچ یک تا هفت بعد از ظهر در سنیویل کنفرانس کودک درون همچنین کنفرانس مثلث رحمت واقعیت مسئولیت اخلاق و یا مثلث زحمت، استراب و استرس، افسردگی، خشم و عصبانیت رو از روز چهارشنبه سیزدهم همه مارچ در شهر ارواین، اورینج کانتی، پلازا، آدرس بیست و پنج، هفتاد و پنج مکی بوی آغاز خواهم کرد و کنفرانس کودک در اون رو از روز پنج شنبه مارچ در اولمپیک کولیکشن. این دو کنفرانسیست که از ساعت هفت و ده بعد از ظهر خواهد بود، هشت هفته، ادامه خواهد داشت همچنین دو سفر در پیش داریم یکی سه شب و سه روزه از لانگپیچ به انسنادای مکزیک که از روز جمعه نوزدهم اپریل آغاز شده و تا دوشنبه بیست و دوم اپریل ادامه پیدا میکنه و سفر دیگه 7 شب و هفت روزه است از ونیس در ایتالیا که از روز شنبه بیست و جون تا شنبه بیست و جون خواهد بود افزون بر برنامههای کشتی برنامههای فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده بنابراین اگر مایدید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91-800-819-91 کامرشالچاویل تماس بگیرید با شنونده گرامی بعدی گفته گویی خواهیم داشت را دیران بفرمایید بفرمی کنم سلام آقای جفتا سلام باشمید. بفرمید مرسی آقای دفتر من سالا پسر 3 سال و نیمه هست الان حدود ابت 3 سال و 9 ماه و الان حدود شاید 7 ماه که پاتی ترین شده تقریبا شاید بگم الان دو هفته هست که خیلی داره ادرار مکنه یعنی شبا خودش رو میکنه توی مدرسه مثلا دارن ناهار میخورم و معالماش میگن که قبل از نهارم ما بردیمش دشت ولی یه دفعه امد از یه ساعت میافته. و من نمیدونم که بعد نگران بشم یا نشم اولا نمیدونم چرا این تغییر پیدا شد دلایلش یک میتونه یه اینفکشن یا عفونتی باشه دو میتونه هم حتما هم نخواهد بود ولی به عنوان احتماله بیماری قند باشه سه میتونه یه نوع بازی و لج بازیش باشه که از این طریق برای نوعی خشمی رو ابراز میکنه چهار ریشش میتونه در استراب و نگرانیش باشه که حواسش رو به اونجا پرت میکنه پنج میتونه کسی باشه که به هر حال احتیاج به توجه داره و از این طریق میخواد اون رو به دست بیاره و یا به هر حال یه چیزی در عذیتش میکنه به همین دلیل است که تغییری که شما میتونید بگی ظرف این چند ماه گذشته تو زندگیش پیدا شده چیه؟ امم اگر اگه راستش نمیتونم بخواید این دو هفته چیز خیلی اول شده ولی اگه اجازه بدین من از از تاریخش براتون بگم این من زایمان راحتی نداشتم سر این بچه. این بچه ای اول من بود و قرار بود که به اصطلاح Daiman طبیعی باشه. دو روز دیر شد و وقتی که من رفتم آب منو که پاره کرده من ساعتی سه بعد از ظهر رفتم این ها فکر مفهوده مثلا نیم ساعت و تا شیخه ساعت بعد آب منو پاره کردم و این تا هفت صبح روز بعد اینا منو سزاریان نکردم و نصف شب یه دسته یکی دو دسته پنج پنش شیش تا نرس حجوم رو توی اتاق زربانه بچه خیلی افتاده پایین و بند ناف نافت ظاهرندورگردنش بوده حالا من اصلا نمیدونم میگم واقعا نمیدونم که جایی نگرانی بد داشته نه بگونی عزیز اونا چیزایی بدیست اونا موضوعی بدیست و آسیبایی میزنه ولی معمولا جز اگر در یه اون مراحل قسمتی که مربوط به کنسول و مثلا کنترل ادرار و مدفوعش بوده دوچار آسیب نشده باشه دلیلی نیست برای این کار که به اونجا مرتبط باشه زمنا اگر بود احتمالا اون توالت ترینینگ رو نمیآموخت اینی که من ده. فکر میکنم اون رو به حوادث دوروبر الانتون مرتبط کنی چون خیلی از وقت بچه هم که نزیشی چیزی ترسن یا به نوعی احساس خاصی رو به دلائلی پیدا کنن یا یه اتفاقاتی براشون بیفته به اون نگاه کنید آیا چیز خاصی بوده که اخیرا اتفاق افتاده تو زندگیتون کسی رفته باشه کسی آمده باشه تصادفی شده باشه یه خبر خاصی باشه یا اتفاق مخصوصاً بدی این اواخر تو زندگی شما که او ازش خبر داره اتفاق افتاده باشه نه نه هیچ تغییری صورت نگرفته تغییر خودش زمین بهش بگید چی به شما میگه چون احتمال بازیگوشی هم هست که سخت درگر بازی بازیو فعالیت شده به اون دلیل این کار میکنه خب اینو حالا برای قسمت مدرسه اینو خب این قابل قبول ولی شب موقعی خوابش ایشون قبل از اینکه به خب خوابه قشنگ این به این عادت دندوناتو مسواک بکنه در شیبور این, این برنامه رو پیاده میکنیم با شش شب یعنی می‌دونم که مثلاًش خالی میشه حالا ممکنه دوباره جمع بشه ولی در این حدی که بخواد نصف شب اجبار بکنه من ثقت آقای دکتر چیزی چه کاران داره ذهنم نمی‌رسه اینه که این ما تو این خواهر یک نیمه داره و شبات خواهر شما میخوابونیم اینو اجازه بدید ببینیم کارتون نگاه ممکن ممکنه ای که دیده باشه که نازک باشه باید نیست برخی از وقت ترس بچه ها از اونجاست ولی آخه ببینید روز و شب میتونم هیچی نباشه فقط یه مرحله گذرایی باشه که یا یه دلمشغولی داره یا اعتنایی به خبر مربوط به ادرارش نمی کنه یا به دلایلی تمایل به کنترلش نداره من فکر میکنم که یک کمی صبر کنید ببینید چه میشه ولی اولین قدم قدمم اگر برمیدارید گرچه به احتمال زیاد جواب منفیه باید با پزشک کودکانتون تماس بگیرید که اگر ایشون ضرورتی میبینه به آزمایشی بده که موضوع جنبه پزشکی نداشته باشه ولی اگر موضوع جنبه پزشکی نداره شاید بشه یه روانشناس خوب ای داشته باشید که پلی تراپی بکنه از طریق بازی‌ها شاید بتونه بفهمه این موضوع رو چگو نمیدونه حالا سوال من از شما این است که وقتی که این تفاخ میافته چقد ناراحت میشه به هم می‌ریزه یا موضوعاتی از این قبیل یا مثلا براش عادیه براش نسبتا میتونم بگم که عادیه شوا ناراحت میشه چون که مثلا لباساش خیس میشه سردش میشه ولی که مدرسه که این تفاخ میافته میگن که اصلا هیچ حال نمیگه <تصفح> معلمه خودشون اصلا میگن که مثلا نظره آب می‌زنه انگار افتاده شده نه اون میتونه اون میتونه از دستبانیتش باشه من حالا این پسر من متاسفانه من نایستان چنده نقطه دیگه هم از خدمتتون بگم اولا این خیلی پیکی ایتره یعنی این اصلا در عمرش به پیتزا لب نزده برگر لب نزده پاستا برای خواهر درست میکنم بهش میگم فقط, فقط لیسش بزن اصلا نمیخوای باز بزن این باشه فقط لیسش بزن میگه یک خیلی چیزا پنی رو مثلا بعد بعد یه خانواده هر دوی هم من همسرم هم هست آم... اونا هست یعنی موضوع اصلی میدونید برای بچه‌ها عامل اصلی اگر فیزیکی نباشه بیش از هر چیز دیگه استراو و نگرانی است بنابراین می‌تونه علائم اونم باشه ولی خب آخه با این موضوع نمیشه به جنگ استراب رفت یعنی استرابش همه. رو با یه جوری راحتش کنید آسودش کنید که بتونه حال خودش با خودش یه جوری کنار بیاد و موضوع عذیتش نکنه چون مسئله اصلی و اساسی شبدراری بچه ها یا به هم ریختن توالت تریننگشون بیشتر هست چیزی به حامل ترس و استرابشون مرتبط است اینه که تو اون زمینه محیط رو برش مناسب کنید یعنی شرایطی به وجود بیارید که محیط آموزشیش انتظاراتی که ازش دارید تبدیل بشه به یک کارایی که او رو نگران نکنه برای که نمیکشه، برم اگر اون سابقه هست بدم البته و متاسفانه ماجرای تولدش خب میتونه به این آتش دامن بزنه. یعنی که فقط فعلا آرامشه. اگر حالا حدود 4.5 یا پنج بود میشد باشه ارتباطی برقرار کرد. ولی برای, برای سه سال و نه ماه منو زود است که شما بی خودی خورتون رو گرفتار و درگیر کن، مواظبش باشید ببینید چه میکنه برای تو مدرسه که نسبت بهش بی اون علاوه بر استراپ ماجرای خشمش هم میتونه باشه یعنی یه چیزی که ای بسا در ارتباط با خواهر کوچکترش هست هم تو خونه نه. زمین همشن. سازی همچین مسئله و مشکلی شد این مدرسه رو وقتی که بشمیگم لباس رو پوش بریم مدرسه میگه که پیج آماده اگر که پیج ای باشه من مشکلی باش ندارم اگر که پیج آمده ای نباشه میگه نمی‌خوام برم وقتا بشمیگم نمی... چرا مثلا بری بعد وقتی یه دلیل میدونم که علاقیه مثلا میگه که میخونم فولانکست به من وازمین کنی در که وقتی میرم پیکابش بکنم میرم که داره با اون بازی میکنه ولیش میگم که با دوستایی نایست بازی بکنم با دوستایی نین بازی نکنم ولی مطمئن نیستم که دارم درستان درستان نه نه، خیلی از بچه ها چرایی رو نپرسید والاای اگه استیمی بده نمیخوام که از مدرسه زدنی نمیدونم بزن میشه حتماً باید بذرید عزیز اصلاً بچه‌ها بعد از که اینکه ببینید عزیز تو سیستم بزرگ کردن بچه یه مقدار یکی از اون قواعد است که کاری رو که بچه باید یاد بگیره یا انجام بده یا باید در همه عمرش انجام بده بعد از که یاد گرفت یه اجازه برگشت نباید بشه درست مثل ماجرای توالت ترنینگ شه ولی چون خارج از کنترل سنشم اینجاست من حرفی نمیزنم ولی بله. اصلاً نباید اجازه داد یعنی ما نباید بچه رو بگذاریم برگره بغل بچه‌ای که راف راف رفته ببخشید به مدرسه و مسئله استراب جدای ناشت اسرا سوشال یعنی اسکول فوبیا نداشت گرفتاری از این قبیله اصلا نباید بشه اجازه دار کرد اصلا سآل نداره نمی‌خوای بریم مدرسه مثل که اصلا حرفی به شما نزنم می‌دونید یعنی اصلا به روح خودتون یعنی درست پس که ما باید بلند شیم صبح بریم مدرسه اگر شنبه و ای و شنبه است نمیریم ولی روزای دیگه هفته میری مثلا جایی برای بحث و گفتگو یا چه فوایدی داره نداره چون بچا اگر فکر کنن که میشه به حساب ما دلیل آوردن به حساب اونا بازی در آورد بهانه درورد برای هر کاری بازی و بهانه در میاره من شاید قبلا هم کردم یه دفعه پسر بزرگ من به من بغیش گفت مدرسه رو دوست ندارم گفتم پدر منم دوست نداشت منم دوست ندارم تو هم دوست نداری ایز دعواش کنی بچهای تو هم دوست ندارن ولی آدم صبح پا میره مدرسه تامو شروع یعنی میدونید پرونده رو در این گونه موارد اصلا ببندید از یعنی در رو برای این گفتگوها به این صورت باز نکنید بگذارید او اگر بخواد حرفی بزنه بزنه ولی نه به صورت چرایی یا ازش دلیل بخواد چون اون وقت میتراشه میدونید و بعضی از هم یاد میگیره که آدم میتونه هر چیزی رو یه حرفت بیخودی بزنه و بعدم در حقیقت نشوندندهی برداشت تو اس از حرفای ماست و اینی که نشون میده وقتی من شما به عنوان پدر و مادر توضیح میدیم یا می خوایم مسئله ای رو روشن کنیم چقدر کارا خراب می کنیم یعنی بچه فقط به این نچمریسته که اینا حرف مفت میزنن و برای چون معنی نداره چنینه من دیروز رو خط تلویزیون با یکی از دوستانم گرفتاری داشتم اینه هرچو گوشش می کردم بانوی ارجوندی که روی خط بودن و بهشون بگم پسر 8 ساله شما شما که 45 سالتونه یک شیشوم شما نیست و اصن چیز دیگه است ما فکر کنیم کودکی موجود بزرگ است با ابعاد کوچکستان چنین نیست <تصفيق> یعنی اگر پدر یا مادری 5 برابر سن فرزندشون دارن معنیش نیست که فرزند ما یه پنجم ماست پس باد اینو بفهمه نه اون از نظر حس و احساس و تمام سیستم ذهنش موجود دیگری است اصن مطلب رو گونه دیگه می‌بینه یا میشنوه یا حس می‌کنه و برای که وارد گفتگو به صورت باش نشید محیطش رو امن آرام کنید هر چیزی که سبب نگرانی و ناراحتی هست رو ازش دور کنید اگر امنیت و آرامش رو بهش بدید حتی اگر دکترش موافقت کرد و این ماجر ادامه پیدا کرد فرض کنید یه آرام بخشی کمکش بکنه حداقل شباب خوابه که خاطر توسته باشه برای که همطور گفتید همون خیز شدنش بعضی از بچه ها خیلی اذیت کنیم مثلا بچه های که ذره پکی هستند. همم هم برادر یه پیام بد و منفی که تو چون اینام میخوان نشون بدن که ما بزرگ شدیم. در بزرگ نشدی خود اون باز یه ذر زمینه منفی داره ولی به نظر من اوقت چیزی نیست شما کمی سب کنید اگر گذاران که چه بهتر اگر نه با دکترش صحبت کنید قبل از هر چیزی باید بین قدم بدیش من به پیام ها رستم ولی خوشبار شدام با تون مشکل خیلیمت مشکلات خواهیش میگرد چنگان عرجمند با ما باشین شنوندگان گرامی به برنامه راست ها و نیاز ها گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم تلفنشون قطع شد خوشبختانه ما رو گرفتن گفتگون رو ادامه میدیم رادیران بفرمایید سلام بفرمایید شما اگر اشتباه نکنم گفتید که 24 سالتونه 10 ساله که الان در اروپا هستید یک سال اگر اشتما نکنم بعد از ورودتون پدر بزرگ رو از دست دادید و دوچار افسردگی شدید به شما گفتن افسردگی دارید با یه اختلال شخصیت بوردر line personality disorder شخصیت ناپایدار درسته بله تو اینجا هم وصفات بهتون بگم که من در حضور سال و پیش پیشم ازدواج کردم ف... و... آره تا اینجا همسرتون همسرتون ایرا... همسر یا نیستن بله ایرانی هستن فرزندی دارید یا ندارید نه نه فرزندی اوكی. <تصفيق> بله بعد اینجایی که من الان یک قرصو دو سال به من دو سال تقریبا میخوردم تا یک سال پیش که من مریضی پیدا کردم یعنی همش به خاطر استراپی و اثر استفراغ می‌شدن و دکتر رفتم خیلی دکترای متفاوت، آزمایش‌های متصوبت همه چی اوکی بود تا اینکه دکتر من گفت این تا چیزی که میتونه باشه مال روحیه و اعصاب شماست که این حالت بدنتون میده و این حالت ناتوانی دیگه هنوزم با مریضایی که دیگه چند وقت پیش من یه مریضه جدی گرفتم طرفم دکتر گفت این از عوارض این قرصه شما بعد این قرص هر چی سعی قطع کنید و این قرص ما من الان قطع کنم قرص دیگه نمیخورم و میخوام سعی کنم اگه بشه قرص نخورم ولی واقعا مشکل بزرگی که من دارم استراحت من خیلی میترسم از ترس از دست دادن پیدا کردم تو یک دو سال گذشته یه سری حالاتی پیدا کردم که هیچ وقت نبودم و اینکه من مثلا 16 سال لگم که از خونه جدا شدم 6 ماهم احتیاج داشتم شما ترس و استرابی کمک می‌گیرید از چه چی چیزهایی؟ مثلا از از دست دادن عزیزام حالا این می‌تونه از مادر و پدر و همسر و هر کسی که دور و بر و واسه هم باشه که همش فکر می‌کنم که اگه چطوری می‌تونم اون روزی که اینا نباشن اصلا تصور کنم یعنی همش خودم خودم آزار میدم و ناخواسته و خیلی حساس شدم نسبت به همه چی خیلی جوها نمیرم به خاطر حالت استرابی که پیدا میکنم و استالت سفراخ میشم تو کارهای روز مرم موندم میترسم مثلا یه جایی قرار بگم هر جا هستم سری میخوام برگردم خونه یعنی فقط برام امنیت توی خونمه خب ببینید اون حالی که شما پیدا میکنید و حرفش رو میزنید ماجرای جرای سایکوسوماتیک یا یا روانتنیست یعنی حال روانی شما یا و نگرانی شما یه مقدار اختلالاتی در بدن شما به وجود میاره مثل استفراغ و اسهالی که راجبش صحبت میکنید و زمنا اینکه شما نگران از دست دادن عزیزانتون هستید نشانه یه نوع ارتباط لاوهیرلشنی است که میتونید پیدا کرده باشید یعنی همه اون چیزهایی که کمی دوست دارید ازشون میتونید متنفر باشید و اون با اختلال شخصیتی هم همخانی داره این هم که این حالات رو پیدا می کنید یه مقداری حتی به دلیل اینکه ای بس ها در کودکی وقتی مسترب می شدید از این میکانیزما استفاده می کردید در این انجام می حالا به من بگید چه مسائل و مشکلاتی در ارتباط با دیگران ارتباط آدمایی که هستن و مخصوصا همسرتون دارید خب مشکلات اصلی که دارم دقیقا چیز هایی که برای خودم عجیبه همینه که اصلا حوصله هیچ کاری ندارم یعنی هر جام که قرار میگیرم به همه شاید به قول بقیه حال میزنم یعنی اصلا خوشحال دیگه نمیشم و اینا همه چیزایی که بقیه اذیت می‌کنه. و اینکه من برای خودم شخصا هیچ ارزش کاری نیستم و هیچ کاری برای خودم نمی‌کنم. ولی برای بقیه همه کار می‌کنم. کار خودم نوبت خودم که میرسث خستم حصله ندارم کار کنسل بلک میگم از یه طرف خودم رو دوست ندارم ولی از یه طرفم یه جاهایی یه حساساتی از خودم نشون میره که خودخواهی من نشون میده در اصل خب ما love-hate relation ازم مصورن ببینید شما چه خبر بوده 5 6 سال اول زندگیتون یعنی رابطه خوبی نبوده به خاطر اینکه از یه طرف خبرها مثلا خبر خوبی نبوده چون پدر همون پنج سالگی من چه سال و نیم پنج سالگی من زندان دو سال دو سالیم سال زندان بود توی همون موقع ها بود که مادر من برادر من حامله بود و بردار من با بایه خیلی بدی بدونیم سالیمونم تقریبا تو هفت سالگی من بردارم به دنیا هفت سال هفت سال و نیم بعد بردار من خودش مشکلات روز روانی دیگه ای داده که هنوز اونم مشخص نشده ولی من همیشه خودم خواستم دنبال این مشکلات برم ولی همیشه هم از یه قسمت همیشه کم آوردم یعنی یه جاهایی خیلی قویام برای میگم همون کارایی که برای همه می‌کنم ولی برای خودم خیلی جا کم میارم. نه پدر به چه دلیلی به زندان رفتم دلیلی شد نمیتونم بگم هرچند دلیل سیاسی بود. تو خانواده پدری و مادری مشکل و بیماری روانی چی داشتی؟ مادری نداشتیم چیزی که مثلا به خاطرش دکتر ببیم یا اتفاقی باشه ولی پدری مثلا پدر خود من همیشه آدم افسردگی بوده همیشه یه جورایی خاصای نابودکننده یا خانواده پدریم خیلی خانواده یه جورایی فردی مثلا آدمای جمعی نیست و قباشون یه جورایی هم حالت افسردگی دارن. ولی هیچ کس دنبال چیز خواست نرفته و لحظه به پزشکی میا. تو وقت شده که عزیز انرژی خیلی زیادی داشته باشی، خوشبین باشی، مثبت باشی، با خواب بسیار کم سر باشی بتونی؟ بله دقیقاً همینطور هستم. من یه روزای انقدر حالم خوبه واقعا باورم نمیشه و من خوابم الان خیلی وقته که به هم مثلا در شبانه‌روز 5 6 ساعت می‌خوابم ولی میگم یه روزای خیلی و خیلی خوشحالم ولی یه روزای دقیقا خوبیده میشم به زمین مثلا بر برعکس اون حالت رو دارم. بنابراین ببین عزیز تو حالت منیک دیپرشن دو قطبی رو داری تنها دیپرشن نیست افسردگی با شیدایی و خوشی و اونم یه زمینه ارثی یه قوی داره. در این حال یه علایمی از بوردرلاینم نشون میدی. حالا به من بگو اگر همسرت میامد روی خد دوتا عیب و ایرادی که روی تو میگذاشت چی بود؟ این ترسو بو هستم این تر، واقعا ترسو دیگه چی؟ دیگه استراب و ترسم رو بهم یعنی فکر که دو دوتا از مورده بزرگم خب احنا اونه که یکی هستم ولی آیا هیچ وقت به تو میگفت که یک مثلا بازی هم در میاری با گیریم هم میکنی؟ بله مثلا خب وقتی ح... حرف همون میشه بحث میشه مثلا خیلی چیزای من و حریفت من در دروغ میدونه در صورتی که مثلا من واقعا دارم میگم نه ایمسان واقعیه میگه نه تو داری در میاری بخواستی این که خود تو کنی یا مثلا اینجور چیزا حرف میشه شما هیچ رفت مزهله خودکشی اینا مطرح بوده؟ بله من اقدام به خودکشی نکردم خودزنی نیم که خودزنی زیاد میکردم ولی خودکشی خیلی بهش فکر میکردم من از چند ماهه پیش مثلا به اینکه چه شکلی بخوام خودم بکشم که برام راحت باشه فکر میکردم ولی همیشه مثلا جراحی فکر میکردم میخوام تحیم داستانم بدونم چی میشه یعنی حالت دوگانگی داره ولی خیلی بهش فکر میکردم به من بگو که از نظر ارتباطت با دوستات، ای درو بود، پنج تا دوستی داری، دور هم جمع بشن و بعد از یه گفتگویی با هم به یه نتیجه‌ای برسن. راجبه تو به من چی میگن؟ که برخی از خوب خوبه خوبه، برخی از وقات بعد و سگی سگی. خب آقا هلاکو، اگه بهتون رو بگم، من الان تو این سه چهار سالی که از زمانی که ازدواج کردم به این ور به این قرص و این قصه تو این دو سال خودم واقعاً این مشکلات من زیاد شده. من اگه بابا فال اینجوری میشما بگم یه آدمه هر کی منو میده میگه یه آدمه که خیلی اصیله خیلی خوشبینه خیلی بیخیال و راحته ولی الان دوستایی که دور و بر من هستن از من انتقادایی میکنن میگن خجا نمیای ترفوشو میفقط تو خونه ای مثلا نمیبینی که دنبال کارت نیستی دنبال درس بدی همش چیزای منفیه که میشنوام ازشون <تصفيق> و این تغییر خوب میدونم که هستش واقعا ولی انگار نازبان شدم قبلا من می میتونستم کنترل کنم ولی الان نمیتونم انگار یادم رفته بدترین مشکل و مسئله ای که تو خانواده پدری و مادری تو بوده چی بوده عزیز؟ <تصفح> چه مشکلی یعنی بیماری نمیزیده. روانی، یه مشکل روانی رو چه تو خانواده پسرم بگوید دایی یا پسرم و یه مادرم یه کسی از اعضای خانواده تو اون بدترین بیماری که کسی داشته در حدی که تو میدونی چه بوده؟ واقعا ندوشتی کسی من تا چیزی که من بجز بعدم خب بعد از من بوده ولی قبل نسل قبلی من واقعا مشکلی نبوده که بودی. یعنی موها همه بدونی یعنی هیچ مریضی خاصی هیچ چیز واقعا نبوده اوکی اگه من بگم بودهش واقعا مخفی نگارتر شده حتی طالع شد هیچ چیز نبوده فقط تا چیزی که خیلی من اذیت میکنه یعنی اگه بگیم مثلا اتفاقایی که تو مثلا باشه چیه دوران کودکی من خب مادر دارم خیلی دعوا می کردیم من کود حکاری که مادرم مثلا میرفت می تو قیابون خودم رو خیس میکردم که مثلا پدرم دنبالش میکردم مثلا این چیزان رو دیدم ولی خب یه جورایی مثلا بیش خودم کردم چه حل،, حل شده تو مرزمه نه مرزم. هیچ کدام نمیشه عزیز هیچ کدام نمیشه فکر دوتا ای با ایرانی که برادرت داره چیه؟ برادرم خیلی عصبیه اصاب... منذبی و عصبیه و ا میده و بغیرو میزنه این چند تا مشکل عیزیه که ما باهاش داریم اون وقتی اینو نسبت به غریبه هم داره نسبت به قریبه ها نداره تا زمانی که اون غریبه چند روز بیشتر به شما نباشه ولی اگه مثلا 5 شیش روز بیشتر بمونه میشه مثل خودمون براش شاید به اونم بپره تو هیچ وقتی که تصویری تصوری از یه چیز غیر عادی غیر واقعی نداشتم یعنی چرا دارم یعنی داشتم من تا همین یک دو سال پیش قبل از این که این قرص رو هم بدن، من به دست من حالتای ترف من دستم نداشت نصف شد. این حالتی که من بیدار میشدم از خواب سریع یا ساعت خاصی خب این یه عادتی میشه توی محض سریع ساعت خاصی پایشه دلیل خاصی مطمئن نداره ولی بیدار میشدم که ترف تپش قلب میگرفتم عرق می‌کردم و فکر می‌کردم که توی مثلا پذیرای ما منتظری که من برم ببینمش و من بین تخت و بیداری و خواب اون طرس 950 همیکم چه که مثلا یه بار خوابم بود واقعا توی خواب حالت مجذ بهم دست داده بود که مثلا حتو بشوارا لغط داده بودم حالت مثلا اینکه خفه داشتم می‌شدم بعد این حالت‌ها يا در غیر واقعی برای کسی میگم ولی خیلی به من دست داده بوده حتت توی روز روشن هم این اتفاقی اصلا برام میافتاد که من می‌ترسم در یخچال ببرنم نکنه یکی پشتش باشه یه دقیقه دو دقیقه وای می‌مونم جلو ولی هیچ وقت یام چین کسی رو اونجا نمی‌دیدی فعلا تصورشون می‌کردی نه هیچ وقت نرفتم. دکتر، من یه من گفتم چرا تو نمیشی؟ یه بار بیاری تو ببینی کسی نیست و این تشوخ رو باش معاونت کنی. گفتم نمی نمی‌کنم. چون فکر می‌کنند من یه چیزی ببینم نه نیمی. من این نمی‌خوام یه چیزی ببینم. و خدا هم هیچ وقت خفن نکردم. فشان بیام و ببینم. نه اگر در اون حد هست سوالم نیست، ببین از این همون تشوکیسته داره ایراد یه ترکیبی از منیک دیپ و البته احتمالا خیلی خیلی خفیف برد لین شدیدی نداری ممکن چیز دیگه داشته باشی بنابراین تو دو زمینه حتما باد کار بشه یکی دارو رو احتیاج داری البته داروی مناسب دارویی که چیزهای دیگر رو در تو برنا انگیزه و گرفتار نکنه بمجد است که هم دکتورت باد بیشتر بدونه هم بدن تو باد گزارش رو بدی تا بتونه تصمیم درست بگیره و دوم یه کار روان درمانیه بلند مدت یعنی یه مدت بر ساله پنج ساله یعنی اصلا کار چند هفته و ماه نیست باجرا یه مقدار سنگینه برای که جنبوی ولی چون توانایی هوشی و عقلی خوبی داری او اونا خیلی مهمه یعنی ابزاری که در اختیارته به تو این فرصت و امکان رو میده که بتونی به خوبی مسائل تو پشت سر بذاری اینکه من توصیهم این است که بگرد بهترین دکترها رو باید پیدا کنی عزیز و اگرم حزینه داره اون انجام بده و با گذشت زمان گرفتارتر میشه چون علامتی برای اختلالات سایکاتیک یا روانپریشی من در تو نمیبینم نتیجتا مسائل همون منکلی پرشن است که قالب اوقات با بوردرلاین همراه میشه و گرفتاری به وجود میاره. به هر حال امیدوارم اگر دکتر رو پیدا کنی میتونن کمکت کنن ولی داروی درست و با احتياج داری بدون اون نمیتونی سر کنی. ولی بر هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم. منم هرگز فقط یه بعد روی خط باشه از روی, روی شنگار اشمند با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه راست و نیاز گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم را ایران بفرمایید آره ولایی کویبه، است. یه سوال دیگه از خدمتتون داشتم و اینم اینه که تاجا بچه‌دار شدن بود. می‌خواستم بدونم که من موقع خیلی دوست دارم بچه‌دار شَم ولی از یه طرفم واقعاً می‌خوام واقعاً بی‌انان م... به این قضیه ربط ندارم. الان وقتش نیست عزیز. تا زمانی که این دو تا مشکل رو حل نکنین عزیز و رو به همت می‌ریسه. هر دوتا تا با هم دادن باشه. هیچ نمی‌تونه هیچ خوبی داشته باشه. اصلاً هیچ تاثیر مثبتی نداره. حتماً تاثیر بد منفی هم داره. Okay. اصلا فکر بچا حتی مواظب باش حامله نشی چون او خودش اگر بچه‌رم اون وقت نگه بذاره یه مسئله است بخوای اونم سختش بونی و بندازی احساس فوق العاده بدی داره که به می میریزه اصلا اصلا فراموش کن عزیز یه کاری بکن و مطمئن باش که هیچ‌وقت حاملت نمیشه فعلا بله. نمیشه تا اینکه این, این مشکل رو بگیرید برای خوشا خوشا با صحبت کردن منم همینطور خیلی ممنون رادیران بفرمایید بفرمایید سلام خواهش من بفرمایید من 24 چهار همه دانشجو هم برای فوقالیسان سمدم کانادا حدودا دو ماهه بعد ببینید من اولی بگم که من همیشه معروف بودم اینکه خیلی آدم مسمونی بودم تصمیم گرفتم انجام میدادم ولی حالا اصلا نمی چه کاری بهتره. اولا اون واقع مسمم هم نبودی، کل و لجواز بیدن آره. بیدن. آره خیلی هم یدنده بود. آره در... دختر خوبی شده دیگه وقتی آدم دختر خوبی میشه اینجوری میشه. به من بهم که من متوجهم. چه رشته‌ای خوندی عزیز؟ من مهندسی برق خوندم. اوکی. اینجا رو را... اینجا فوق لیسانس نانوالکترونیک می بعدش برنامه آه. چیه؟ بعد از فوق لیسانس؟ من میخوام خودم دوست داشتم بخونم استاد دانشگاهم همیشه اینجوری میخواستم پدرم هم استاد دانشگاه بودام که می‌کنم تأثیری داشته که من همچین چیزی بخوام ولی همش باشم کار آکادمیک کنم. Very good. اون کیو با ایران نداره اگر به هر حال در ایران یه جایگاهی داره خارج از ایران امریکا یا کانادا جای دیگ. خب حالا دودلیه تو راجبه چه موضوعیه؟ راجبه اینجا موندن یا برگشتن به ایران. نه. یعنی یعنی الان یا بعد از اینکه درس تموم شد؟ الان چرا یکی اینکه من وقتی که یعنی یک کمبر بعد از اینکه اومدم شروع که فکر کردم فکر کردن به این موضوع که دیدم واقعا قبل از اینکه تصمیم بگیرم بیام اینجا کجا و فکر کرده بودم اصلا به همه جواب نمیش فکر کرده بودم فکر بودم چی از دست میدم چی به دست میارم الان دیدم بعد دیدم واقعا چیزی که به دست میارم شاید اونقدر فرقی نکنه من تهران که بودم دانشکده تهران بودم تو دانشگاه تهران بودم از یعنی دانشگاه خیلی از مشکل خوبه. الان من واقعا اینجا اون درس نما میخونم یا درس میتونم تو سام تهران بخونم؟ خیلی با هم فرقی ندن. باعث می شه که دست بدم. نه، سر کن آخر. سر کن بیست. تو اگر بری اونجا میتونی فوق لیسانس بگیری درسته؟ بله. ولی احتمالاً مدرک دکترا اونجا میدن یا نه؟ چرا مدرک دکترا هم میدن؟ حتی پست داک میشه خون؟ اوکی. حالا فکر می‌کنی با اون میتونی به اون هدفی که داشتی که استادی دانشگاه برسی؟ ا استاد دانشجو احتمالاً میتونم برسم، و این بخوام به خاطر عواイド و هجاب و اینا نذارن من حیاچل میشم که واقعاً الان زیادیش میاد. نه تو اون زمانی فلس... که تو دکتر بشی این حالا در <تصحب> باوخه پس چرا تو که میتونستی در ایران فوق لیسانس و دکترا تو بگیری تصمیم گرفتی بیای کانادا؟ واقعشعلان نره تو ایران یه جوی یا توی دانشگاه های مثلا به چهران و شریب همه افلای میکن و بیا بهتر و آدم قشن منش میکارم می هم فنابد چگونه بود اس هم طر از توی تبلیغات ست میگم خب من باید اپلای کنم که بایددم به دانشگاه بهتر ولی الان اینا واقعا فرق این دانشگاه بهتر که در درریاست خوددن و چهران واقعا خیلی شود بعد من یه تویوب بیام فکرم خیلی مهم باشه منلی نگفتم که هم مدیس به با هم اومیم و الان بخوام برگردم خب کلا میخوام اگه بخوام برگردم رو قصد میکنم چون فکر نمیکنم رو از راه دور چیز خوبی باشه و این نظریه که فکر میکنم خیلی منطقیه شاید این بود که من حداقل وقتمو میگرفتم بعد برمیگاشتم ایران ولی الان خاطر ایشونه که من اگه بخوام برگردم الان بهتره الان برگردم ای ایشون الان با تو هستن اونجوری دیگه درسته بله ایشون چند سالشه 26 در چه مرحله ای از مدارج دانشگاهی هست؟ اونم فوق لیسانس می خونه، لیسانس خواندمش خیلی خوب شما از کی دانشگاهتون حتمی و قطعی شروع میشه اینجا؟ شروع شده من الان دانشجو okay. هستم. اگر بخوای برگردی ایران که امسال که احتمالاً شاید نتونی بری دانشگاه درسته؟ اه, من اونجوری که کردم رو بذاختم و, و اینا گفتن که میتونم انتقالی بگیرم همین بهش برم به دانشگاه تهران. احتمال از مه ماه تا دو اگر بخاییم چه پروسسی رو شروع کنیم چه مدلی طول می‌کشه تا جواب قطعی و نهایی بگیری؟ بعد این که به شما تموم شه، مهلتش بیاد بعد شروع کنم به اقدام کردن، میتونن دو ماه بعد رو جواب میدن. یعنی کلاً از الان میشه بعد یعنی تو یه ماه دیگه جواب اینترنت میاد عزیز؟ بله، تمام تمام میشه. یه هفته بعدش جواب. من معتقد هستم که برای اینکه خودت رو دو اشکال نکنی، بهترین کاری است که درس تو خیلی خوب بخونی. این شماره یک دو تقاضای این انتقال رو هم بدی ولی در این حال هم برای خودت اینجا رو باز بگذار که اگر قبولت کردند ممکنه بری ممکنه نری <تصفح> یعنی تصمیم قطی و نهایی نگیری اولا دو ماه برای تصمیم گیری درباره این که آدم باید برای زندگیش چه بکنه دوران کوتاهی دوم اگر رابطت با دوست پسرت خوبه خود این یه دلیلی میشه یه وزنی مهمی میشه برای اینکه که هر درقل نو دوتای اونجا بگیرید و بعد اگر خواستید برید اون دکترا یا این ولی برگرد باقیلیتش ام... اینه که رابطم خوب بود ولی الان واقعا به خوبی قبل نیست نمیدونم چرا؟ یعنی موسیقیل همیشه داشته دوست باشن و من اینا رو ولی الان به شدت برام شده. ام... مثلا ما قبلا هم در زمینه های جنسی یه بار مشکلی مایه های خیانت من داشتم ولی بعد از یه ماه گذاشتم و ولی الان این موضوع عزیزم می و مثلا اخلاق های بدی که داره مثلا ولی من می دونستم که مثلا علف می کرده یا اینکه خب بیاد توکر بازی می کنه یا اینجور چیز ولی اینا الان من رو عزیز می و من بشه خودم فکر می من تهیده هم این چانتای دوستم واسه که واسه میشه کمتر داشته باشم فورن می اگر نه اینا واسه ایران هم نه آخه ببین عزیز ماجرا اینکه بازی میکنه و یا علف میکشه اینا برخی از اوقات نشانه یه مغزی است که برای تحریک و برانگیخته شدن خودش و یا کنترل خودش احتیاج به این استیملیشن یا محرک خارجی داره و اون یه مسئله جدی میتونه باشه. یعنی اینا موضوعای نیست چون آدما ممکنه یه کار ثابتی رو بکنند. دو نفر یک کار ثابت و واحدی رو بکنند. ولی دو تا دلیل و یا پیامد یا عواقب بسیار متفاوتی داشته باشه اینا علائم خوبی نیست حالا این سال مهمه آیا پدر و مادر تو با این رابطه موافقن یا مخالف؟ پدر و مادر من خیلی موافق نیستم ولی مخالفم نیستم میذارم به عهده خدا ولی خب آره برای اینکه اون یه قصه نه به خودت مهم نیست ولی من موافقم دوم پدر و مادر تو ترجیحشون این است که تو برگردی ایران درس تو ادامه بدی یا اینجا پدرم میگه ترجیحاً حالا خودت بگی ولی خودش هم نمیدونه یعنی خودش هم اصلا ندوش نه خب ببین عزیز اونا وقتی انتخاب تو خوشبختانه بین خوب و بهتره حالا یکیش خوبه یکیش بهتر تازه بیا انتخاب خوب رو بکنی بعد وقتی متوجه شدی که این انتخاب بهتره تو نکرده که آدم به هم نریزه انتخاب بین خوب و بده که آدم میتونه بعدن پشیمان بشه یا به هم بریزه بنابراین این انتخابه من فکر می‌کنم الان که آمدی برای تو خودش تجربه است. یه مقدار علائم میخوام بگم رشدی که از نظر اجتماعی و یا شاید احساسی عاطفی احتیاج داری رو هم نداری یعنی دختر باهوشی هستی توانایی‌های خاصی داری در زمینه علمی به هر حال هم هایی داری هم استعداد و قابلیت هایی داری اما اینا هیچکدومش زمینه ای رو فراهم نمیکنه برای اینکه تو در برخی از زمینهای دیگه اون رشد لازم و کافی رو پیدا کرده باشی اتفاقن این جدایی از خانه از تو یه آدم بهتر و برتری میتونه بسازه و ضمنن این تجربه که فعلا برای تو اتفاق افتاده با توجه به اینکه آغاز کارت از همه چیز تغییر کرده و دگرگون شده رابطتم خراب شده یه فرصتی بده من اگر جای تو باشم درس ام می خونم آخرش درخواست انتقالمو میکنم بعدش میتونی دو ماه دیگه سه ماه دیگه بعد از اینکه جواب آمد اگر دلت خواست و هنوز دو دل بودی و واقعا رابطه به صورت هشتاد یا 90 ده در بود به من زنگی بزنی اون وقت میشه اطلاعات دیگری و یا بیشتری ازت گرفت ولی الان به نظر من خودتو دل مشغول موضوعی از این قبیل نکن و درباره رابطهت هم خیلی جدی هر دو تا باید کار بکنید یعنی باید مطمئن بشید که این رابطه سالم و درسته و ایلا هم به هم به هماسیب می‌زنید هم تأثیرات بد و منفی در کار آموزشی تون میگذاره هم در تصمیم گیریاتون یه دلیلی هم که الان دو دل هستی به خاطر اینکه چند تا همه وارد این معادله شده یه معادله یکی دو مجهوله نیست چند مجهوله شده و ایناست که وقتی که اندازه یا وزنهای مختلف بهش میدی تو رو مردد میکنه معان دلیلی برای تصمیم گیری تا پایان گرفتن نتیجه امتحان و درخواست برای انتقال نمینم ولی اگر با انتقال تو موافقت نکردن صد درصد معتقدم باید بمونی یعنی اون اصلا تو موافقت نکنن که دیگه بعد ماه تازه کنکور بودم بر سال بعد برم دانشگاه که تو اون موقع دیگه اینجا بهمون درسون تموم شده. That's right. بنابراین عزیز من معتقدم تو کوشش تو برای نمره خوب بکن. در این حال می مقدار دوربر خودت تو بحثم با آدم های مختلف نکن چون اون کمکت نمی‌کنه. با خانواده هم میان نگذار برای که اونا تو رو پایین و بالا میبرن. یعنی موضوع رو فعلا به مدت یک ماه یا دو ماهی که یا تو جواب رو بگیری دو سه ماهی که چیز داری مسکوت بگذار بذار ببین که واقعا چه میگذاره و بدن تصمیم بگیره و بعدم اشکالی نداره عزیز که آدم در آخرین لحظات تصمیم بگیره من اصولا با تصمیم از قبل در بسیار از موارد مخالفم برنامه ریزی رو میفهمم انتخاب هدف و جهت رو میفهمم برای این بسیار متفاوته که آدم اون رو با ماجرای اینکه تصمیم میخوام بگیرم. که به نظر من خیلی ناپخته است یعنی هم اگر من میگفتی نه من الان میتونم تصمیم بگیرم میگفتم اینقدر به نظر من پنج و, پنج و, پنج و پنج میرسی که اصلا جایی برای تصمیم گیری نیست یعنی حتما اگر میتونی به تاخیر بیاندازی این کارو بکن این که پیشنهاد من به اینه یعنی که به تأخیرش بنداز یکی دو ماه دیگه اگر همه جواب ها تو رو در مقابل این دو تا راه گذاشت که ایران یا اینجا اگر درست خاصی زنگی بزن. اگر مثلا ایران نشد بنابراین این همطور که خود اشاره کردی اصلا جایی برای گفتگو باقی نمیمونه و من نمیخوام در شرایطی اگر اونجا تو رو نپذیرن که معمولا تعداد دانشجو محدوده واقعا به نوعی تصمیم برای رفتن بگیری و اون وقت سرخوردگی داشته بدم قالب به ما وقتی که وارد این محیط میشیم برگشتنمون یک کمی بوی شکست داره حالا نه به خاطر مردم به خاطر خودمون. این هم خودش موضوع مهمی است که میخوام گوشه ذهنت داشته باشه یعنی که من فکر کنم بهتره صبر کنی تا یه مقدار تکلیف تو میان این دوتا راه بر اساس واقعیت‌های بیرونی روشن بشه اون وقت بعدن‌ها حالا که دو تا آپشن یا دو تا احتمال در مقابلت هست یکیش رو برگزینی و دیگری رو کنار می‌ذاری بله ضعیف ما الان الانم که مادام افسوس بشه حتماً که اگه برمیگردم رو حداقل میشه خودم احساس این دو سخت بود. و من اصلا هم برایاشتم. من بسیار موافقم اونم تو اگر واقعا ترم اول بتونی نمره A+ باشه نشون دهنده این است که هم با استعدادی هم قابلیت‌هایی داری و هم, هم واقعا کارتو به درستی انجام داری برای که تفاوت ملاک هایی که نه تنها در درس بلکه برای ارزیابی و اندازه‌گیری است تو این دو تا کشور خیلی متفاوتن این که من میگی دانشگاه های خوب ایران اون چند تا واقعا با تعداد دست است. از در حد دانشگاهی معتبر اروپا، امریکا یا کانادا اصلا موافق هستم. بنابراین کسانی که از اونجا میان اینجا جایگاه و پایگاه محکمی دارن. ولی این شامل حال حداقل دانشگاهی، یعنی سقف دانشگاه های امریکا و کفشون بالاست. ولی در ایران چند دانشگاه که سقف بالایی داره، اما کفها یه مقداری بیشتر به کف در حقیقت تمدید جان اگه این سواله که شما می باید سن رابطه بد به نظر من رابطه من نمیدونم نه اون رو وقتی یه وقت دیگه در واقع توش دو هفته پیش شما من گفتم دیگه نمیخوام ادامه بده و مشکل اساسی جدا از این اخلاقی‌ها بعدی اینکه حالا اینا مشکل اصلی که من دارم اینه که اصلا نمیشه خیلی وقت‌ها نمیشه صحبت کرد باهوش بفهمه مثلا عصبی میشه خیلی زود عصبی نه. نه من متاسفانه اون دو تا علامت رو که دادی خوشاالم نکرد و همینجاست که من چون الان یه دوست دیگه ام از مدتی قبلو خرب بودن میخوام بیارمیشون یه وقت دیگه ای خواستید دو تایی تون روی خط بیاد اگر خواستید فقط راجبه رابطه اون وقفه تو صحبت کنیم برای اینکه به نظر من یه ذره ناپخته است ولی اون علائم ملایم خوبی نیستن اونا برخی از خود ترکیبش نشانه یه مقدار گرفتاری عمیق و سنگینه تا امیدوار من از که اینو هم نداشته باشه برآن موضوع با هم دیگه و موضوع خوید باش خوش با صحبت کردم. خیلی ممنون شنگا نجمان بعد از دقائقی با ما باشید شنوندگان گرامی به برنامه راست ها و نیاز ها گوش میکنید پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با اگاهی دوستانی که در شمال کالیفورنیا هستن میرستونم که کنفرانس دوازده ساعته کودکی درون رو فردا و پس فردا شنبه و یکشنبه شنبه و دهم مارچ از ساعت یک تا هفت بعد از ظهر در شرائطن شهر سنیویل شمال سنهوزه خواهم داشت در این کنفرانس چهار تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا دوازده سالگی و سه تجربه هیپنوتیزم یا هیبنوتراپی جمعی خواهیم داشت همچنین کنفرانس مثلث رحمت واقعیت مسئولیت و اخلاق و زحمت استراو و استرس افسردگی و خشم و رو از روز چهارشنبه 13 مارچ در شهر اروین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی خواهم داشت و کنفرانس کودک درون رو در المپیک کلیکشن از روز پنجشنبه چهاردهم مارچ این دو کنفرانسی است که از ساعت سال ده شب بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت همچنین دو سفر در پیش داریم یکی سه شب و سه روزه از لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. که از روز جمعه نوزدهم اپریل آغاز شده و تا دوشنبه بیست و دوم اپریل ادامه پیدا میکنه و دیگر کنفرانس به ببخشید سفر 7 شب و هفت روزه از ونیس در از ایتالیا که از شنبه بیست و دوم تا شنبه بیست و نهم جون خواهد بود اگر مایلی ما در این سفرها با ما باشید لطفاً با یک 800 819 1 800 819 1 800 819 1 commercial travel تماس بید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیران بفرمی؟ بفرمید؟ Hello? بفرمید. Hello? Yes, I, I only speak English. No, I'm sorry. We have to have in Persian because our listeners are Iranian. I think we discussed it with you that you are supposed to talk in Persian, not in English. I'm sorry. No, this is the first time I called. Oh, I think I made a mistake. I taught another line. I'm sorry, but thank you very much for calling. Thank you. Radiran, before me. Hello. Hello, before me. Khaishpan, before me. I want to know that if someone... هم خوبیه با خانمش لذت جنسی اصلا نمی بره و کارش چیه چه مدتیست که ازدواج کردید ازیز؟ دو سال نیم. نیمه شما چند سالتونه؟ من سه یه سال ایشون چند سالشونه؟ شما سه یک سال چه مدتی با هم آشنا بودید؟ آشنایی آشنای یک سال آشنا بودید آیا تون مدت آشنایی یه چنین تمایل و کشش جنسی نسبت به ایشون داشتی؟ من چون نه، فکر اندامشون این شکلی هفرش. نه آخه اندام ایشون رو یه مقداری با لباسی که میپوشیدن میتونستید به هر حال حدس بزنید و این چیزی نیست که آدم ندونه یا متوجهش نباشه یعنی شما جان چی عزیز؟ متاسفانه متوجه نشده آیا شما در تمام مدت یک سالی که با هم دوست بودید هیچ ایشون رو با لباس کم نه یا اوریان ندیده بودید؟ نه نه آیا هیچ تصویر و تصوری از این داشتید که ممکنه چیزی باشه که مطابق میل شما نباشه؟ نه متاسف یعنی اصلا حتی به ذهنتون نمیومد که ممکن همچین مسئله ای داشته باشید؟ نه خب به اصورتش باشگاه جنرال بوت مثلا فکرمندام شباغیات نکردم و خیلی هم من این آخه شما در این زمینه اینقدر کم میدونی درباره زن با... یا درباره خودتون و کششی که نسبت به یه زن میتونید پیدا کنید داشته باشید؟ آیا فکر ببین واقعا نه. چون ببینی من میخوام متوجه بشم موضوع همینه چون از صداتون من موارد و مسائل دیگری رو میبینم بعد میخوام مطمئن بشم که شما به عنوان یه مره سی و یک ساله با موضوع بدن خودتون بدن یک زن از چه چیزهایی لذت میبرید یا خوشتون میاد یا دوست دارید یا ندارید اینقدر بیخبر بودید و بعدم این رو در یه زنی در لباسش نمیتونستید حدس بزنید که چه خبر است یا یک چیز خیلی غیر عادی وجود داشترش خیلی آه فقط چیزی که واسه من خیلی مهمم و میدونم حال مریضزی ای یا نه طبیعه اینه که من از واقعیت منسییناش خیلی بزرگی که آزار میدمم خب این چیزی نیست که خوشبختانه میتونن کوچک کنن اگر واقعا اینشون هم با این کار موافق باشه عنی این چیزی نیست که کوچک و بزرگ کردن اون خیلی مسئله باشه بللاه برخی از اوقات ممکنه در کوچکی شما فکر کنید که از راهای استفاده شده یا به طریقی متوجه شده ولی بزرگی رو که معمولا اگر کار خاصی ورش نکنند شما میتونستید از قبل ازش خبر داشته باشید با اون وقت این که براتون مهم بود پیش توجهی نکردید میگم اینقدر نمیتونستم فکرش بکنم اینقدر بزرگا که عملا این طرح همه میگم توی ایران خیلی زشت و خیلی بد میشه، بدتر میشه. حالت خوبی نداره، هیچ که هیچ‌کد من رو توصیه نکردم. نه، حالا اون که درستی حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم آیا واقعاً شما نسبت به بدن ایشون اینقدر حساسیت یا دنبال بهانه و بازی دیگری می‌گردید؟ آخه فرهم خطر نمی‌دونم. خیلی دوستش دارم. یعنی هیچ اون نمی‌کنه منو آروم کنه. من خب می‌خوام که نمی‌تونم از خوبی خوش لذت ببرم. اصلا خیلی این فقط اینو آزار میدنن که اصلا فکر جدایی اصلا نمیتونم بکنم بایشنانی میخوام فکر میکنم شاید بعد خود درد سر بشه واسه یعنی اتفاق بعدی بیفته نه آخه شما چرا یه موضوع اینچنین برای شما سبب میشه بهشون تمایل جنسی ندارید یا اصولا وقتی که در رابطه بایشون با هستید اون تمایل رو از دست میدید مثلا خودشم خیلی گله میکنه که خیلی کم پیش منی جرندت فردی در صورت که من خیلی آدم خیلی شروری هستم یعنی چی خیلی شرور هستی؟ یعنی خیلی آدم چی بگم؟ یعنی من خودم خیلی آدمی هستم که خیلی تو... من زیاد زیاد دوست دارم که هم همخوابی کنم خب آخه شما که یک سال با ایشون دوست بودید تا بدن ایشون رو ندیدید بله بله میگم دوست من آخه قبلا ازدواج کرده بودم جدا شده در چه سنی شما ازدواج کردی؟ اندی فعلی چه مدتی تو اون ازدواج بودید 5 سال اون دختر خانم وقتی شما بیسی یک سالتون بود چند ساله بود؟ اون دختر خانم هیچ تفرش بود اون وقت چه دلیلی برای جداییتون بود؟ یعنی دلیل اول یا دلیل اول و دومتون برای جدایی چه بود؟ نه ولی. من خیلی بچه بودم واقعی نصد سنم خیلی کمتر بچه می فهمیدم خانواده من با اون کنار نیمدم اونم طاقت نگود منم بلد نگودم چجوری این وسط همه چیز رو درست کنم یعنی باهاش باشم فکرم رسید که اول اون مهمه به خواست جدایی دادم اونم قبول کرد و جدا شده. به من بگید که با ایشون هیچ مشکل مصاده دیگری داری چه از نظر بدنی چه از نظر روابطتون نه اینم افتران پیشونم قبلن کرده داره و جدا شده و یه بچه هم داره بچه چند ساله داره؟ بچه که الان ده سنش. شما با وجودی که ایشون ازدواج کرده بودن یک سال با هم دوست بودی بدن ایشون رو ندیدید؟ نه به من بفرمایید که آیا ایشون خبر از این موضوع دارن که مشکل به مسئله شما با ایشون چیه نه من نذاشتم بفرمایید چون خیلی آزارش میاد اگه اگر از نظر پزشکی بتونن این مشکل رو حل کنن یا با جراحی بتونن حل کنن ما دیگه موضوع و مسئله دیگری نداریم. هیچ مشکلی ندارم چون واقعا دوستش دارم، قلبم دوستش داره تا حتی انقدر میترسیدم زنگ بزنم که شاید یه یهو یه جایی این به گوشش برسیم. حالا یه دوستش. سالی ازتون دارم. ایشون دو تا چیز خوبی که داره چیه؟ این دو چیزی که شما در ایشون از نظر اخلاق و رفتارش دوست دارید چیه؟ درکش خیلی آلیه خوب میفهد منو، من خیلی خانومه خیلی خانومه نه هر نظر واسه من خانوم سره از هر نظر که هر جا من میرم یعنی بهش میبالم شما, شما چند تا خواهر برازر دارید؟ ما هشت شما چند هستی؟ من چهارو میپسرم شما چند تا خواهر دارید شما؟ آیا این خواهرا با شما رابطهشون خیلی خیلی خوبه متوسط یا بد؟ خیلی خوب، خیلی ببینید عزیز شما به نظر من یه سیستم ذهنی دارید که خیلی چیزها رو میسازید یا ویران میکنید یعنی از نوع حرفاتون پیداست با توجه به جایگاهی که در خانواده داشتید با ازدواج اولتون و جدا شدنتون با اینکه الان این موضوع رو اینقدر مهمش کردید در حالی که یک راحل داره دو دلیلی نداره که اون توجه رو در وقت رابطه جنسی حالا چه در طریق ارتباطی که باشون برقرار میکنید چه با توجه به نوری که در اتاق هست به صورتی در بیاری که براتون آفرین باشه اونم به نظر من جایی برای اینکه شما رو به اینجا برسونه در مورد زنی که باهاش ازدواج کردید و میگید همه چیزش خوبه و دوستش دارید اصلا نداره اصلا بیاد فرض رو بر این بگیرید که شما ایشونو دوست دارید ولی به دلایلی شما یا ایشون یا هردو توان ایجاد رابطه جنسی را ندارید چند روزه این موضوع براتون مهمه من متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم اگر دلتون خواست که البته چون یه خبرای اون تئ وجود شما هست یعنی اونا موضوع اصلیست است و ماجرای این چنین با توجه به راهحلش و به هر حال که هست قرار نیست این همه شما رو به اینجا برسونه و این همه گرفتار کنه حالا اگرم رو خط رادیو راحت نیستید لطفا و یک روانشناس خوب مرد پیدا کنید هر جا که هستید و با او در میان بگذارید ببینید که کجا هست یک کند کابی در وجودتون به نظر من خیلی از موضوع و مسئله روشن میکنه چون من فکر میکنم پشت این ماجرای فیزیکی مسائل دیگری است و ماجرای خاهرها اگر با روانشناس صحبت کنید بگید اون موضوع ارتباط شما در ذهنتون و رابطتون با خاهرها در کوچکی و جوانی و بزرگ برحال باید چک بشه من متاسفانه با آخر وقتم رستم اگر دارتون خواست یه وقت دیگه ولی اگر نه حتما حتما با یک کسی در این باره صحبت کنین خوشحالشنا با تون صحبت کردم مرسی. متاسفانه ببخشید منو چون شما شاید از ایران تلفن میکنین خبر ندارید من با باید خدافزی کنم روز و روزگار خوش و خدا نگه دارم.